عشق شرط لامای تبتی در وقت معمول روی سندلی ظاهر شد و به من اشاره کرد که از رخت خواب بیرون آمده و آماده املای سخنانش شوم. لو به گذار وارد بحث امشب شوم که آن را عشق بلاشرط نام می‌نهیم. این موضوعی است که برای مطرح کردنش با تو مدت زیادی انتظار کشیدم. پر ترین نیرو در جهانهای درونی کدام است؟ نیروی عشق، همانی که ما قدرت عک خطاب میکنیم؟ آنچه تو فکر میکنی نیست؟ و این چیزی است که من قصد دارم امشب برایت اثبات نمایم. در جهان معدنات همه چیز به نظر جامد و ثابت میآید در حالی که در اقلیم نباتات و حیوانات نیروها در وضعیت انعطاف میباشند می باشند که همواره و با سرعتی در حال تغییرند که با چشمان اوریان قابل رویت می باشد همیشه در حال خلق شدن و دوباره خلق شدن در جو زمین شاهد وجود گرما نور و انرژی می باشیم که از جهانهای مرعی به سوی جهانهای نامرعی از طبقات خشنتر به لطیفتر یا از بلغوبه های پایین تر به سوی بلغوبه های بالاتر در سفر باشیم ملاحظه می کنیم که هر طبقه ای از طبقه پایین خود لطیفتر و معنوی تر است آنگاه که به آخرین جهان نامرئی درون فیش می‌رسیم، عشق را در خالصترین و لطیفترین وضعیتش مشاهده خواهیم کرد بنابراین این قدرتمند نیرو در طبقه زمینی نادیدنی است به همین ترتیب مشاهده می کنیم که عظیم ترین نیرو در بشر نیز نامرئی است زیرا نیروی معنوی قدرت الهی یا عشق وجهی از آدمی است که همواره در حال حرکت به سوی مقامات بالاتر و وسیعتر تر میباشد تنها راهی که برای تجلی این نیرو وجود دارد از طریق روند تفکر میسر می‌گردد تفکر تنها فعالیتی است که روح الهی در تصاحب دارد و فکر هم تنها محصول تفکر میباشد این البته در رابطه با طبقه زمینی مस्तक دارد و در تعلق به وضعیت انسانی است بنابراین جمع و تفریق دادسته تدی معنوی قلمداد داد می شود استدلال یک رواند معنوی می باشد نظریات ادراکات معنوی هستند سوالها چراغ جستجوهای معنوی می باشند و منطق مجادله و فلسفه ماشینالات معنوی به حساب می آیند. اگر روند معنوی از طریق تفکر عمل نماید می توان گفت که قدرت سوخت این موتور روند احساس است. به زبان مکانیکی ذهن به جای موتور است اما سوخت آن قلب یا قدرت نابخداگاه میباشد. هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری کارکت مفیدی داشته باشد. به ترتیب هر فکری توأم با احساس پیامد فیزیکی معینی را در بخشی از مغز سلسله اعصاب یا ازولاد موجب می شود این عمل باعث ایجاد تغییری در شرایط بافت کالبدی می شود علا اینکه در کدام کالبد فیزیکی، اسیری، الی یا غیره رخ دهد بنابراین فقط کافی است عدد معینی از افکار توان با احساس در خصوص امر خاصی مثل عشق داشته باشیم تا یک سری تغییرات کامل در سازمان وجودی به وقوع به پیوندد اندیشه های مربوط به والاترین کمال مطلوب در فرد ریشه می و بافت کالود فیزیکی او تغییر می روحیهاش عوض می شود و زندگی را با روحیه دیگری مشاهده می نماید او تولد دوباره یافته مجددا از روح الهی زاییده می شود. زندگی معنای تازه‌ای برایش در بر دارد و سازمان حیاتی‌اش بازسازی شده از شادی، خودباوری، امید و انرژی آکنده می گردد اکنون به موضوع عشق می‌رسیم. این کلمه به معنای غلط مورد استفاده قرار گرفته است. عشق عبارت هست از قدرت یا بیان اعلییی که تو در اشتراک با من استاد یا خداوند داری این قدرت یک است که در اتحاد های مذکر و مؤنث خیش الهی خود در جستجوی موازنه و آرامش میباشد انگامی که قطبیت حقیقی به دست همه چیز در هماهنگی کامل با قطب مثبت عشق الهی میباشد. و قطب منفی، عشق انسانی بدون هیچ تزلزلی صعود مییابد و خود را در آن عشق ممزوج کرده و تمامی نیروها در همه طبقات درون به موزون‌ترین حالت از یک قطب به قطب دیگر فعل و انفعال حاصل می‌نمایند. اغلب این چونین تصور می‌شود که عشق انسانی و عشق الهی کاملا از یکدیگر جدا میباشند در حالی که در واقع هر دو یکی است. این دو فقط دو قطب متضاد دند از یک نیرو به نام استاد یا آنچه خود خدا میباشد. با این تعریف می توانی معنای خدا را در عشق دریابی. یک تحلیل دقیق از عشق نشان میدهد که عشق آنگونه که مرد مادر مقدس را در معشوقش نیایش میکند و بالعکس زن خدا را در مرد آگاهی مرد و زن معالا با عشق الهی قطبیت حاصل خواهند نمود اما عشق عملا نور است یا یعنی آنچه در مراقب عدم به صورت جویباری از اتمهای تابناک میبینی که در اطرافت در شعایی مثبت رقصان است با هم کردن خود با این جویبار درخشان بخشی از آن میشوید و به سوی مرکز خدایی و خانه حقیقیت باز میگردی تمامی مشکل این قطبیت یافتن بستگی پیدا میکنند به استعداد آدمی در تزکیه افکاری که تمامی نیروها و عملکردهای کالبد او را تحت تسلط دارد او باید بداند که هیچ یک از کارکردهای کالودش نادرست، غیر طبیعی و غیر عادی نیستند مشروط بر اینکه از آنها به درستی استفاده شود و توسط اندیشه خالص کنترل گردد نیروی خلاقه الهی یا عشق که حلقه اتصال تو با خداست والاترین بیان طبقه زمینی خود را در سکس یا نیروی جنسی جستجو میکند به همین ترتیب در تمامی دیگر طبقات معنوی ذهنی و غیره همین بیان مصداق دارد تمایل جنسی همیشه آفریننده است و نمیتواند بدون اینکه خلق کند در هیچ یک از طبقات کارکرد داشته باشند جنبه‌های برتر آن روی طبقات فوقانی و جنبه‌های تحتانی آن در طبقات فیزیکی متجلی می‌شوند. لکن در تمامی موارد این یک قدرت معنوی است که از طریق انسان در جهان بیرونی به فعالیت مشغول است. اكنون می‌رسیم به اتحاد بین مرد و زن. اتحاد فیزیکی مرد و زن نمی‌تواند موجب صلح و شادی باشد مگر اینکه همان وحدت در سایر طبقات بالاتر نیز انجام یابد زیرا مانند تمامی مقدسات این اتحاد نیز باید به طبقات بالاتر وارد شده و در آنها نیز به ثبت برسد قانون عشق الهی هر روحی را به پیمان عقد حقیقیش در خلوص کامل و در تمامی طبقات رهنمون می شود این عقد حقیقی همان وحدت روح با اک میباشد هم قطب شدن یکا یک روحها ند روح که به عنوان مرد و زن به یکدیگر می پیوندند و آن گونه که مقدر گشته است هر روحی از طریق تجربیات مکرر با هدایت الهی عشق حقیقی را می یابد که در نهایت همان عشق اک و ماهانتا می باشد تو میتوانی علاوه بر بیان مادی از نظر معنوی نیز با جفت خود ازدواج کنی مشروط بر اینکه تمامی بدهی ها و های گذشته تصویه گشته و موزلاتی که در اثر اشتباهات به وجود آمده اند مرتفع شده باشند در واقعیت آرزو و تمایل جنسی چیزی نیست جز تلاش روح در جهت بیان عشق الهی از طریق ظرف جسمانی و باید مقدس قلمداد داد گردد زیرا در اتحاد مرد و زن به عنوان دروه به هم پیوسته نیروی زایده می شود که بالاتر از آن است که حواست فیزیکی به متجلی نمایند حواست برتری حاصل می کنند و روحها از عشق انسانی به عشق الهی صعود می نمایند اینجا نقطه است که عشق الهی عشق انسانی را لمس کرده و بر آن پوشش پیدا می کند اما فقط آنجا که عشق انسانی آنچنان خالص و مقدس باشد که هیچ چیز قادر به بیان آن نباشد زیرا این عشق فراسوی درک ذهن است فقط آنگاه است که یک نیروی تازه زایده می شود نیروی که ابزاری جهت تجلی مستقیم عشق الهی است این نیرو در یک سود و انسان را اتحاد میبخشد و در سوی دیگرش یکایی که آنها را به سرچشمه الهی پیوند میدهد که مطلوب معنوی هر دوی آنهاست و به این ترتیب یک تسلیس کامل میسازد در یک چنین اتحادی خدا از طریق یک پیوند کامل و خالص انسانی فرصت تجلی یابد و اما در اینجاست که عشق بلاشرد پا به میان میگذارد نخست آدمی میباید معشوق خود را برای هر آنچه که او در دیدگاه الهی هست دوست بدارد اگر آدمی نتواند به فرد دیگری به این ترتیب عشق بورزد هرگز به عشق الهی نمی‌رسد. این تنها روش معقول و مقبول است عشق گرمی که اشاق از برای یکدیگر احساس می‌کنند. نقطه آغاز عشق غیر شخصی آنان از برای خداست اگر می‌گویم عشق غیر شخصی، بدین معناست که عشق خدا باید عشقی خالص و مبرا از هر زنی باشد. زن و مرد به عنوان عاشق در دامن عشقی آنچنان گرم و عواطفی آنچنان عمیق به سر میبرند که هرگاه توجه عاشقانه یکی از دیگری سلب کرده بسیار دردناک می‌شود. اغلب مکالمات و مجادلاتی سخت میان آنان برقرار می‌شود اما این تنها بخشی از عشق خدایی است که در جستجوی راه حلی برای مشکلات و مسائلی است که در طبقات ته پیش می‌آید و همواره در جهت کمک به آنان مرای صعود به افق‌های بالاتر منظور شده است اشاق حقیقی همیشه در عشق با یکدیگر به توافق رسیده با یک بوسه یا هماغوشی تنها یک تجلی از قدرت خدایی است، نزاع را پایان داده و دوباره قدم در صحنه مثبت الهی می‌گذارند. یکی از محصولات اصفبار جهل و نادانی این است که ما اغلب می‌پنداریم تحمل رنج و عذاب از جانب کسانی که قرار است دوستشان بداریم نشانه ای از فضیلت عشق است. اگر خواهان آنی که یک زندگی پر از ویرانی و خطا داشته باشی، این نوع عشق را امتحان کن. منظورم از بیان این عبارت این است: در مقابل همه ابنای بشر روحیه ای گشاده و دوستانه داشته باش. ولیکن بگذار تجربه به تو بگویم. ابراز دوستی و عشق به آنانی که آرزو داری به تو نزدیک شوند، کجا درست است و کجا خطا؟ بگذار غرائز الهی به تو بگویند، عشقت را کجا نسار کنی. حالا میتوانی ببینی چگونه عشق بلاشرط بخشی از نظم کیهانی است اکنون چند کلمه دیگر بیش از پایان گفته بود تو بیش از حد میخوری و باید برای به تعادل رسانیدن، برخی از شرایط کارمی که کالوت جسمانیت مدتی روزه بگیری به تو خواهم گفت روزه از آغاز کنی بیشتر فکر کن بیشتر مراقبه کن کمتر بخواب کمتر بخور و اکراب به شدت دوست بدار اینها باید شعار تو باشند همه وعده‌های من اجابت شده‌اند. تو قالباً آنها را از دیدگاه درستی نمی‌نگری. بیدارتر شو بیشتر به من فکر کن آنگاه خواهی دید من چه میگویم شب خیلی